شرعی دوره ارین شرعی مسید پدری جبار خلافت غاق نوی ایتم شرعی دوره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم و فداء ابي وامي ونفسي ترشيح النظام الفيدريك دراغونستان حكيمش نظام كان ذلك بعضن حاكم مس الكريم خير روشان زي السيقات ارتباط بايه التحكيم تحكيم مش عايزه الله عز وجل بارك اشاي القران الكريم حاكم ما مسازن حاكمني مسازن وبغير اسقال فصلا ما يكون الله لكم كفر صاد الكلم هم لم يحكموا ما انزل الله فهولائك هم الكافرون تفسير مايله هم لم يحكموا ما انزل الله فهولائك هم الظالمون ولم يحكموا ما انزل الله فأولئك هم الفاسقون. وفسين وی اشاره میکنه چون خطیر همورا در دوال بیان وی اشاره میکنه کی صفات کفر و ظلم و فسق کس اینا همه کی در برگیریه بو حاکم است حکومت غیر منزا الله حکومت غیر منزا الله میکنه و لما وی اشاره میکنه که جمله رؤوس تواغید پنج است رؤوس تواغید پنج یک از جملهم هو حاکم الحاکم الجائر المبدل لأحکام الله. احکام الله و حاکمی کی وزریمی کی احکام الله زوجه رچی تبدیل میکنه داشت تغییر یادرش تحریف میکنه در ملت حاکم میشه که مردم به فیصله کنند ببین قرآن، در ارتباط با فیصله و تعقوت میبرن چی فیصله میکنه الم ترا الذین یعمن انهم ما وما من قبل محمد صلی الله علیه و سلم میکنن ما که انجل باش ما باو ظبور ایمان داریم یریدون ای تحاکم دل حال که اینا که به تاخوت فیسر ای به فیصله و قد امرو از, از طرف الله عزوجل که به کفر و شیطان شیطان خیلی دور دلت دلت دلت دلت آیت کسی فایسلی خود در وقت نزاع و کشمکش پرخاش با چی میکنه؟ با تعهد دی می تعهد است متضاد است با چی با ایمان به الله عزوجل با ایمان به ایمان که کس دکس زام کنه که من الله عزوجل ایمان دارم و شویلی می مشاهده کنیم و خود پس خود مشاهده که مخت الله کفرش صادر میکنه ایمان ازو نشه میکنه پس تو خود طاغوت چی چون طاغوت کفر است فبا یکفر به طاغوت و یوم بالله فقد استمسک بالاور و الثقلان انقسم لها والله سميع علیم پس کسی که با طاغوت کفر اخلا اعلان کرد و با الله از زوج ایمان بدون شک با دستور خیلی محکمی چند زده که هرگز نمیکسوده پس کفرت با طاغوت که مقدم ذکر شده طاغوت چی میگن که غیر از مورد پرستش قرار بدی چی نظام و قانون باشه چی انسان باشه که زباد خود راضی باشه؟ نظامی از به حکم ما زلانا می کنے این نظام نظام تاغوتی است پس قبل بای اشاره شدی کسایی که, که در سبیل تاغوت می جاکن کافر است پس حکم خود تاغوت چی باشد میبینین کفر به تاغوت که است علماء به اشاره می کفر به تاغوت که است بدین معنا هست که ما از عبادت تاغوت بیزاری خود اعلام میکنیم. کنیم ببطلان عبادت تاغوت که با تاغوت دشمنی خود اعلان میکنیم، بغض در قلب با تاغوت داشته باشیم، دشمنی خود را میکنیم، و تاغوت و آبدین تاغوت تکفیر میکنیم. اگر ما در هر کدام ازی مشکل در ماهیجات شد، اداره میکنه که در ایمان ما اشکال پیدا شده، حتی باعث چی میشه باعث تخلوی ایمان میشه. قرآن از ابراهیم علیه السلام بر ما سوال میکنه، و الله عزوجل ابراهیم منعیش نمونو القو بر ما چی میکنه تقدیم می إبراهيم عليه السلام <سؤال> بمجموع ازم ومنعك دورة بيش حلق زدن برات خد رسكيلان میکن از قام خد إلانه إنا منكم ومما تعبدون من دون الله ما شما بري و بيزار استم يعني ما تعبد ما بيزارست. استم ومما تعبدون من دون الله جزر غير از الله شما قد استشمئن كفرنا بكم ما كفر خد بشما إلان کرد وبدأ بين وبينكم العداوة والبغضاء وابدا حتى تؤمن بالله وحده ودشماني ما هشکار شد بگذی ماشکارش شد لاشش من بدن تا وقتی شما با الله حزور جلبان ایمان می بس ای ملت ابراهیم علیه السلام که ما باید کفر و خدا بات با تاقد بايد در آن کنیم. بیزاری خراس تاقد در کنیم. نظام فیلی که در افغانستان حاکم است این نظام نظام تاقدی است. این نظام است که جانشین نظام شرای اسلامی بود که با کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه و سلم فایض سلامی که جهانیان امضاش نه. بس ولایت متحده در این جنگ سلیبی شریک شدن به افغانستان ریختن و هی نظام غلام و نظام مزدور و نظام مرتد و کافر در افغانستان چی کردن کردن پس نظام چی حکم داره؟ نظام متشکل متشکل از اموال مزدوری است نظام که متشکل از غلامان مزدور ز خریدی است که از جای مختلف جمع شدن نظامی که متشکل از او افراد منحرف و مرتد از کناره از دایره استام پرچودن باسوی دایره کفر و فعلا در اونجا در این نظام. پس این نظام تکیف شریعچیه است. این نظام حکم شریعچوارچیه است. این نظام قرآن با سرعتی ارائه میکنه. این تر نظامیه است این نظام ای کفیریه. چرا؟ این نظام حکم منزل الله میکنه پس نظام کفیری شد. این نظام موالاتش که از بدشماری الله عزّ و جلال است. با بدشماریش الله عزّ و جلال است و مجاهدین است و است. این نظام با طاغوت حکومت میکنه، فیصله میکنه، فیصله اش طاغوت است. مشاهده میکنیم که به بودن خود مردم متحد اینا افتخار میکنن. اینا که که در پهلوی پیماناتو قرار گرفتن، بلکه ازونا از اونها ان دعوت میکنن که اینا مزید اساکر و بیشتر اساکر باید در افغانستان بفرستن. و بدون شک اینا که که در موارد با کفار خارجی رفتن، نظام کاروتی در افغانستان حاکم شدن. ما در بخش بخشی نظام در افغانستان مشاهده میکنیم کی نظام با نابسامانی باشه مشاهده میکنین در افغانستان که در هر بخش و هر جای ابعاد اجتماعی اقتصادی و سیاسی زندگی خود ما را مشاهده میکنین فساط دامنش روزانه واسطه نشو نمیرا همه استمداد از قانون اساسی یا ازمو اینجوری تراز مقدس خراشان میکنه که به او استمداد میکنه دوستانت میجوین به خاطر از نشی از پس این نظام فیلی که در افغانستان حاکم است این نظام کفر است نظام کافر است توجه نظام کافر است. خوک میمانزل نمیکنه و مللمیک مانزل فولادیم کافر. نظام تابوتی است. ما باید با تابوت باید کفر خدا لام کنیم. و این نظام کی است؟ نظام واردش بادش منایی. الله حسیب زدی است. و دیگه ما فاسد خیری بیشتر دیدی داره که این مفاسد برش کافی است که از دایره اسلام چیکنه دایره اسلام بیرون پس این نظام نظام کافری است. نظام تابوتی است. پس بر هر مسلمان در هر گشوه کنار جهان واجب ای است که باید کفر خدا باید تابوت باید لام کنیم. کفر خدا باید تابوت باید را کفر خود این نظام فیلی در افغانستان باید اعلام بکنه. با راضی بذاری خود نظام باید اعلام کنه. دشمنی دشمنیش در قلب خود باید متوطن باید بگردونه. وی دشمنی رو باید اظهار باید کنه با این نظام و اعزای اعضای از این نظام ها. که از راس میشه. اینا را چیکونه تکفیر کنه؟ راس از این نظام که هر کسی که باشه، کابینه نظام، پارلمان و لسی اینا همو حیات تنفیزی و تقنینی در افغانستان هستن که هکم بغیر ما انزر الله می کنن و اینا بدون شکی حکم اسلام در برگرندی از اینا هست پس در این نظام کس رئیسش با اعضای کابینش بخطر وقتی که قضیه مکفر مطرم می شکن که مکفر بالای چوب و و شاخ و برک مطرم نمیشه شکن بالای افراد مطرم می که ما بطانیم با اینا دشمنی خدای زهار با عضوای پرلمان نه بلکه با خوشتشو با پرلمان باید درام کنیم در حالی که مشکل ما با خوشتشو با پارلمان نیست مشکل ما با کسایی که تخت ازی قطبه گیر داده شدند و اینا متوجه باشین که ثمانه تکفیر مطلقاً گذاشتن دیش دراست و داشتن مسواک دراست و پاچی کوتا نیست یا داشتن کارت عضویت یک تنظیم دیروزی جهادی که به اون خیلی مردم افتخار که به اون افتخار میکنن با سنگ دعوت مردم به جهاد بسینه این هیچ مطلقاً موانع تکفیر نیست اینا موانع تکفیر نیست چون از بخاطر که اینا اصل دین خودش اینا فعلا حکم متغوط میکنن یک. و دومی است موالات چند کس بادوسمنای اسلام است. موالات چند بادوسمنای اسلام است. و این نظام فلیق در افغانستان هاکم است مشاهده میکنیم که همه تنظیمها، بر همه تنظیمها، حتی تن تنظیمای را مشاهده میکنیم در افغانستان مثل افغان ملتیها، با اشکار انواع مختلفشان مثل سطحیها، حتی تنظیمایی که منسوب به اسلام هستند هم را مشاهده میکنیم. و یک بخش اسلامش متماسک است و همه رحمه اسلام میدن. مشت... بره رحمه ی این آقای زمیت. میخواید تیر جزء لایتزیز نظام دموکراسی است که بره همه تنظیم‌ها و احزاب اجازه نمیدن که چیکودن کار کنند. یه تنظیم‌هاي کوفی باشه یه تنظیم‌هاي خیلی کوفی باشه. ایرو مفرند در بارستان چیاس ایرو مشاهده میکنم در پارلمان هم گرده هم آماده هن. پس این نظام نظام کوفی است. بای ازه. و کسایی که در این نظام در مواراد به نظام قرار دادن قران بصراحت میگه که ولادین کفر و قاتلون فی سبیل الله پس کسایی که در اردوی ملی هستن کسایی که در پلیس هستن کسایی که در گارد هستن چی خاص باشه چی عام باشه کسانی که جواسیی وزارت دفاع وزارت داخله اینا همه هرگانایی است که در مواراد به نظام قرار دادن در مطلقاً تفیق نسس از وزیر تا تابا چبراسیری وزارت خانه گفته اینا خیلی خوب دیگه متوجه باشن ولی ما به خاطر اعلان میکنیم که اینا هزار باشن که اینا در کفر واقع هستند اینا کافر هستند اینا مباح و دمسن مباح و مارس در زیر در منطقه قرار گفتن اینا شفیعشون الله اسلام است و هیچ اوزی قبل از ما گفتیم قران بر اینا هیچ گزاره هیچ گزاره برشان نگذاشته هیچ گزاره نگذاشته کی نهوز اریکن ما بخاطر دنیای کار کردیم ما بخاطر درهم و دینار ریا را دارین کار کردیم همه الله عزوجل همه بالا همین مزه چی میکنه الله جل خط چلیپا میکشه نه یزره متخ مورد قبول مورد قبول نیست در مسائل که مربوط به اصل دین میشه خب ای گفتی مزارات لاخلا و دیفاکس اینا و استخبارات اینا دستگاههای هستند که در موارد با نظام میخوان این میونه جند تا قوت اینا عسکر تا قوت هستن میبینیم قران کریم باصی که شویت حیران مونکننه شو دارین میذام تنا راس که ارزا یک افران کسایی که برجم اعضای کابینش اینا حکومت کفر میگرن اما برخي کسای که جنود و اساتير ناستن نه ببین قرآن با الفاظ واضحه ذال ارتباط به فرعون صحبت میکنه فرعون این فرعون و حامان و جنود جنودهما كانوا خاطی فرعون و حامان و جنود اساتيرش خاطی بودن خطاکار کار بودن یعنی ده محل شاید به این اس کی خاطی و فصادق الذين صدر هم حكم اينا دربر مي‌ديرن فرعون و قوممان جنوشن او فرعون ذي اوتا فر حواله كه صاحب چي بود صاحب وار صاحب جنود بود فاستخف قوما فتعه انهم كانوا قوم فاسقين قومي خد احمق صار قوم شرازي پيروي كردن اسفران پيروي كردن و هي حكم صري فكن قوم فاسقو ماسياتكاري بود بس اي حكم حكم مشترك است وقتي كه مادرسي نظامم شايد راس, رأس نظام بدون اسكر معنا شود چی فکر میکرد در افغانستان تنام یک رسمی بود با اعضای کووینیش. در افغانستان چی کردم افغانستان؟ اینا مردم تعقیب میکردن. اینا اینا تمام اورگانای کشور رو با پیش میبردن. نه وقتی ما میگه نظام نظام به این که متشکل از افراد میباشه متشکل از دستگاههای مختلف های مختلف میباشه که در هر جای افراد در چی میشن جواب جا میشن که امی کاروانه کسی کاروان اینا باید روان باید نسازن. ما سین نظام مشاهده کنیم که بخش از این نظام کس، این در موالات با کفر قائل شدن گفتیم وزارت داخله و دفاع و استخباراتی نباشه بغا جوواسیست و بخش دیگه شما مشاهده میکنید اینا حکومت می بغیر ما انزل الله کردند مثل وزارت عدالت حکم بغیر ما انزل الله است ما تعجب میکنیم از علمای سو که در فتاوی قلابی برای مردم میدن که گویا گویا بودنش ماادری کس همه اسلام مفید واقع نمیشه اما تخندریم متخن اشکالی وجود نداره ببین رسول الله صلی الله علیه و سلم در حالیکه تبادلی روایت میکنند، رسول الله صلی الله علیه و سلم در ارتباط با آن مرای صوبات میکنند که مردم زائل می‌آیند. اما مردم کافر نیستند. و صوبات میکنند که در آینده آن مرای سفاف و خونخوار می‌آیند. حاکی میشند، مردم ما اول ظالم ازائل میشن میشند. کافر نیستن حالا مردم زائل می‌آیند. وگر کسی از شما در هیتو موقع قرار گرفت، هیتو نظام آن داریاف، در هیو زمان پیدا شد بود، پس ما باشه کی وضعیت فباید نگیره. چی نگیره؟ لا تكونن عريفاً عريف بيتنا ماشى عريف فما ني كسي كن نقطة وصل ميانة مردم ومينة شيء أو ميانة حكوماتس حكومات مثل كسي ذلك منطقة وكيل مثلاً ما كي نقطة وصل جور مشى دوم لا تكوننا بريداً بريداً من مخترع سفيرة بسفيرة النظام بيتناشى سيوم لا تكونن شرطياً شرطي و police النظام بيتناشى لا تكونن جابياً جابي, جابي كسي جیبایا میکنه مال جمعاری میکنه مال جمعاری لا تكنن خازلا خازن نباشه ان وزارت مالیه قرار بگیره متوجه باشن که پاین وظیفه ر که رسول صلی الله علیه و سلم معنی کرده که مومن بین نزدیک شود ای در سایر نظامی است که کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه حکم میکنه و فیصله میکنه حدود اسلامی ر چی اقامه میکنه سرحدات اسلامی حفظ است و جهات مردم میفرسته خه انسان ظالمی است حکومت ظالمی است چون مخاطره ای پاین موقعیت که درخواهم خدایی مورد ظلم است در حکومت ظلم ای پاینجا مورد ظلم است مالیج جا مالی کردن در رأس خزانه قرار گرفتن پول شدن، سفیر شدن اینا همه این به این میکنه کسی که نقطی واسط میانه مردم میانه حکومت باشه که اینا مورد ظلم است پس انسان انسان متقی وقتی تقوا رو تم میکنه اعظم چ مظایفتش دور می باشه پس چیونه میشه در نظامی که در نظامی که نظام کفر است بر اساس این حدیث ابوذر ابن سامر حدیث مسلم است این با صراحت بیان میکنه که شما تا وقتی با حکامان نجنگید تا خزینه کفر به واه حصدر نشته باشه من الله فيه برهان نه شما برهان باشه و برهان واضح است در روایت امام نووی رحم الله شرع میکنه وصیت بابا ما این كفر به ما در نظام و دیگه نظام ها همین نظام ها به وجه نظام افغانستان ما این را مشاهده فعلا میکنه کفر به افغانستان در حاج دیگشت گذار داره حاکم در افغانستان نه هستند پایگاه اعتماد از اینها است پیمان نوتو را مشاهده میکنیم فالش در افغانستان هستند احزاب کفر را مشاهده میکنیم در افغانستان فعالیت دارند فساد را مشاهده میکنیم فساد مقنن که در در در پرده های تلویزیون در صفحات رادیو میشناویم در پرده های تلویزیون این مشاهده میکنیم فساد اخلاقی رو شاید نمی‌کنیم فساد اقتصادی رو در حال هر زندگی هر فسادی است تا قوت در بونستان حاکم است پس بنا این نظام که نظام کفری است هر کسی نظام دفاع می‌کنه چی قولی و عملی نظام دفاع کنه این بدون شک کسی در موارد با نظام چی است بر هزار باشه در نظام است کسی که ما آخرت و میخايم که از روز آخرت محروم نشم پس باید متمسک به با کتاب الله لشو و بوزترین فرسات و بدون کدام در رنگ توقف باید نظام باید ترک و کفر باید تر کنه و در داری اسلام چیکونه داخل شو بیذاری خود از این نظام اعلان کنه و چی بهتر باشه که در صف جهاد قال بگیره در پای مجاهدین که واجب عینی است متوجه هر فرد مسلمان است واری از نظام چیکونه شمشیر میگیره ما از طرف الله کلبی اسم کعلی نظام میبشیم در حالمون شایده می کنیم که مردم در این نظام در دستگاه هستن خب ببینیم شما فتوای دی که كده در وقت کی رساب ورستنا شغل كده چی فتوای بود و فتوای بود میکنن که شما مشاهده میکنین که کسایی در نظام کار میکردن حکم تکفیری صادر شده بود اینا مردها ای میکوفار هستند اونجا کسایی در نظام دلیل دستگاه حتی بدون تفریق خب چی تو میشه که دیروز این فتوای صادر میشه و امروز چون امی علی جنابه دیروز این فتوای رو میدادن برای نظام قرار گرفتن برای دستگاه قرار گرفتن نقش کیدی در نظام بازی میکنن، امروز فتوای چی است تغییر پیدا میکنه امروز كفر بإسلام تبدیل مشه وإسلام امروز بكفر تبدیل مشه قهرمان الروزي امروز بعد عشاة افغانا بطرورس تبدیل مشه هذه عجیب نصفات واحدة در ایک از روایتك در مستدراك حاکم عمدا یک صحابي و صحابي دیگا ميگا او سيني مره توسيه کو ميگا اياك والتلون في دین اللہ برتوسك در دین اللہ عز و جل تلون نکنی بیماراك فتاواهای رنگارنگ کارهای رنگارنگ نمیکنیم در جای یک کار اکنون در جای دیگه مخالف کار میکنیم در جای یک فتواه است در جای دیگه فتواه دگری بته ایرم فعلا مشاهده میکنیم این مطلق ای مساله این مساله با او مساله مرتب مرتبه نیست که فتاواه در جای تدریج تاجر پیدا میکنه تاجر پیدا میکنه او نظر به مسوابت فتاواه است ما فعلا مطلق ندیم مورد مطلق نیستیم ما در مورد استیم که مطلق بر ما بخوام احكام اسلام رو آلوانه بر ما جلو نظام افغانستان، نظام اکران در افغانستان حاکم است نظام کفر است، به الفاظ واضح بحرم میکنه نظام کفر است کسایی در نظام از رست شروع میشه تا به اعضای کابینه اینا همه کس همی دزگاه حاکمی هستن در این نظام متنفذین در دری حکومت هست بعضای پارلمان رو نیست جرگه ولو که مدعی بیمشن که ما رو ملت انتخاب کرده ای تماما درامهی بود تماما که بوده. با نظام دموکراسی اسلام متقن مخالف ما با نظام دوستی مخالف استیم و اسلام الهام گرفتیم و همچه زای که از نظام دموکراسی ۱۳ میگیره متقل ما با ما چیستیم مخالف است چون اسلام با یکی مخالف است پس این نظام نظام کوفری است وقتی که اتلاف خوب مکوفر میکنیم اطلاق خوب مکوفر برای افراد میکنیم برای چیو بدرخت تانکو تانکو تو مردم نمیکنیم برای افراد میکنیم برای افراد و این را همیشه کاری که متعجب باشه که قسمت ارتداخت وقتی که ارتداخت با شکل فردی می باشه، با شکل فردی رحمتت. دو اگر بنام ارتداد فردی و خفافه میگن، کسی از از از اورک ندارد اسلام انکار کار میکنه. در حالی که نه حزب را تشکیل میکنه، نه به دلار حرب فرار میکنه. در یک نظام کفیری میل بنامه بر علیه نمازی اسلامی. در این توالی کسی شخص شخص فردی است، موضع مورد ردیش قرار میگیرد که توبه کرد خوب اگر کاری صرف میکند که من به دلیل فکر دو کسی که نیفتاده اما کسانی که ارتداد کردن حاصل دین خدا بریدن با اسلام بریدن در صف غیر اسلام استاد شدن هنا مطلقاً استطاره اینا واجب نیست بلکه در باب استحباب اینا داخل نمی‌شن اینا کسایست کله الله و رسول تحزب کرد در الله و رسول صلى الله عليه و سلم ببینن مخاطب ما می علمای سو است اینا بدانند و هو جوونای است هو کسای است که نظام قاورتن مفتاوای قلابی اینا بعد از وفات رسول صلی الله عليه و خیلی ربهام مرتب شدن، ادای دارویی مبادک کردند، کسای کردن. جناب پیر بیکردند. از جمله کسانی که علی نظام مسلمت قیام کردند کیا بودن، کسانی بودن که قبلی بود افرادی بودن که امتناع از زکات کردند، تنها زکات با او بکر دل نپرداخت. چرا نپرداختند؟ اونا باید بدن که آیه وار خود من واهنم صدقات مخاطب از رسول الله وآل احسان است که اینا صداق بیکیر. پس مخاطب کیاست؟ رسول الله وآل احسان نه با بکر است. شونا وزيفي تدهير تتحرهم بها وزيفي تدهير باكي زكاردن كاسي وزيفيه رسول صلى الله عليه وسلم وزيفيه أبو بكر صديق وقت ببارك صديق حوالا سيد كي إدتو الأفراد اجتماع كردن زكاة النمي بردازا ميقن أبو بكر مستحق لزكاة النيس أبو بكر صديق وفو اللهي ما مي جنب باكسك باين زكاة وبين نماز فارق فرق قائل واشي يعني بيبنا كاسك نماز نخونا باومي جنب كاكا زكاة ن و فکر زورو در را بر دو سلامی پردا برام نه نه ما بونام می‌جام. ببینید جنگ صورت کرد. اینا تنها زکات نپرداخته بودند. با الله و رسول ایمان داشتند، با قرآن ایمان داشتند، با جهاد ایمان داشتند، نماز می‌خواندن، روزه می‌گرفتند، حج میکردن رسلاس نمادیداد بودند. قوانین غربی را حاکم نساخته بودند. با رومیا و فرسیا هم پیمان نشده بودند. فقط زکات به خلفی مسلمانان پردا. در حالی ثابت است روایت که زکات میانه تقسیم کرده بودند. وقتی ابو بکر بوینا با می جنگ الله تعالی عنه بوینا مامری مرتدین میکنن اینا رو و قتل میرسونه مال غنیمت می زن های شونن که نیز وقتی که دوباره منصر به ابو بکر صدیق پیشنهاد میکنن ابو بکر می که اقرار کنن، که قتل های شما پشت های شما در دوزخ است و کشته های ما در جنت است و هی و هیچی میکنن اقار به میکنن به اقرار اقار میکنن حتی روایت رحم الله كي الصحابه نقل الخو مشك لولا أبو بكر لمكفرنا قر أبو بكر ما كافر ميشودين ايش أبو بكر مشايده ميكونين مي كي الصديق قزي امته كي وما شنو بالمعامله انجا حتى بعض رزكو انداخ هالديره باتش ز هالديره شو انداخ زيندار شو انداخ انه جو باق وفاتكم بينا بينا سيره أبو بكر الصديق رضي الله عنه ايش باينا باينا حتى بالروايه ميك خالد بن وليد مجاخه برایش میگه میگه که من ما ما با, با ایران نبودم با با ایران نبودم خالد درو برایش میگه میگه تو با ایران نبودی اما چرا میگه تو اظهار نکردی نه بودنت چرا علیشان اقدام نکردی بلکه رضایت سکوت دلت بر رضایت تو میگه چرا تو جهر به ایران نکردی مثل فلان فلان فلان چیکار کر. اعلام کردی اینا مامره مرتبط کده خالد بن ولید رضی الله تعالی بس ادم مشاهده کنیم که امروز این نظام که این نظام اگر مشاهده کنیم بیایید میر مقایسه کنیم با کسانی که در اهل ابوبکر صدیق تناز زکاتم تناز زکاتم نمی نا کرده بودند هم تعمیل امتناع کرده بودن, بودن. امروزی این نما مشاهده میکنیم که از ابوا بجای نتی شده از اسلام بیرون شدن پس ما بوی است فر فرد فردی که به این نظام هستند به این متوجه باشین که به با این فتاوای قلابی از مردم بازی نخورید یک و متوجه باشین دین خدا آخرت خدا بازیچی از این مردم نگردید ای کسایی که کسایی که فتاوای قلابی میدهند این کسایی که با می فتاوا تغذیه می شوند و می خورن و می نوشن و در تناوم و در طرفوه زندگی می کنند اینا را متوجه باشین که با آخرتانه با دیچه مردم قرار نتین بیدار شمین وزی نظام بیرون شمین چرا در آخرت فقط دو منزل براتو است در حلیث صاحبت است وقتی که انسان مفاد قبر میشه بر این شان اگر جنتیوب بهشتی باشه میگه به با طرف چپت نظر گفت طرف چپ نظر میکنه میگه ای بنی آدم میبینه که در اونجا آتش است خانه مالاماره آتش است میبینی آتش مشاهده میکنی خانه را میگه منزل تو بود در جهنم خطوره الله ها زوجه میگه نجاتت آله میگه طرف راستت ببین طرف راست مشاهده میکنه ابوها زیبار زيبا را مشاهده میکنه گل ها را میکنه جای سرساد و شاداو را مشاهده میکنه خوشحال میشه میگه منزل تو در جنت است الله میگه بر تو مهربانی که در رحمت شمولال که تو بی تو می گاری به داخل شو. و برعکس اگر کس انسان جهنمی و دوزخی باشه اولی منجله بر شانه نشه منجورش در جننه. ولی گفته میشه الله تو را نعمت محروم کرد. عالم شوید که من جهنم. پس این حدیث رسول شانس سر بس که در انار انسان از خود خانه و خانه, خانه در جنت خانه در جهنم داره. جایگاه در جهنم جایگاه در جنت داره. پس اول اختیار با تو است که تو خودت اختیار کن. و اینم باید متوجه باشی که در این نظام کار میکنه. در هر شوابایی که باشه، بخشایی که باشه که این نظام ای را خوب متوجه باشند ای که این نظام بر تو مفید واقعی شده می‌تانند و هیچ خود برای بازینتی که جعل می‌برد ماوزش شدند تعویل برای ما ماوزش شده نمیتانه. در جستجوی ریس روزی با خاطر اولاد بر تو ماوزش نه مطلق نبرد تو و اینم باید که اسلام اگر نماز روزی را گرفتی نماز را خاندی و به حج رفتی گویا که اسلام در این مختصر نه که اصل و اساس و اسلامی نداشته باشد. ولا يكون لا الله رسول صلى الله عليه وسلم ومن نظام في نظامه قرار بيجيلا من كثر سواد قوم فمنهم رواية بخارية ومن يكون الشعيلة اشكال قوم رزياد ميك نظانه نحاس فسن شما باش نكشو ما ما ظانينا هستين امام احمد رحمه الله روايات مش كدر قذية خلق القرآن <سؤال> كسي خيارت ازشبرصان كدر زندان يقول يا امام غي والي ظالمه كف ما خيارت ازي واليه هستم تا کلا بر وامیر عمرش خاله را برش می‌دوزم. گفایه مقداری ایت موارکاتو اخیر نمیشه مستقیمی ایت نیست که فلا ترک به لذین ذلمو فتمسکمون نار. کشما بر کشای کشور کردن رکون نکنین میل نکنن بهیکس. فقط میل بودن به او بیکسر کسی با او باشه. فقط میل نکنه. گری کارکنن اطمآن آدش جهنم شما اطمآن می‌کشه. شما با جهنم دخیره متوجه وسیم. اما محمد گف نگف تو زمیز آلماستی تو زمیز آلماستی. اُفری ترکنو کی از کسای که گفتو که که تو پیشش تار میخری تار میخری به خاطری که کالا را بدوزی و همه حاکم ظالم کالا می ای کدام حاکم از زمان ما محمد رحم الله حاکمی که اکی با قرآن و سنت حکم میکنه اما حاکم ظالم است حتی برای حکام ایا ایا از امام سفیان سرون نقل قول میشک که یاک والامراء یاک تدمر الاماراک با فاسق فاجر چی جور که ما میخایم و مران نزدیک شاید با خاطرک پتانیک مشکلات مردم محل کردند. قدم میگی زینت کی فساق و فجار با خاطر مسئله چرخشی خودشکنم. امام سلیمان استوری وقتی که این داره سر زده وقت در وقتی که در وقتی است که اسبحای مسلمانان در شرق در ترکستان شرقی است در حضات چین و در غرب در اسپانیا و در, در نزدیک کوهای پیرنی و پاریس در فرانسه است کشم اسلام در وقت این داره سر بزنه که مردم مردم مجاهده است نظام همه ظلمه و فجری و فسقه بودن کی کار میکردن خب امروز مشاهده میکنیم که اینایی که همه در بریدن پس آیا می شی بطور در مفید واقع شوه پس ما بیستم خام باید وظیفه را باید ترک باید گفت نظام کس نظام کفری است و این وظایف را که برطنان شرح کردم وظایف ای مسلمان راه قرآن راه دین از آن توست بی روی از امر خالق مظهر ایمان توست زندگی جا بدن در سایه قرآن بود بی از امر شیطان می گو من پایان توست ای مسلمان راه قرآن راه از امن خالق وزهر ایمان توست زندگی جا در سایه قرآن و باد خیر از امن شیطان دیگو من بایان توست تابک خواهی به زیر ظلم دشمن جان دی ظلم دشمن را ببین که آتشی در جان توست توحن زخمی در دلت داری برادر غم نخور و آخر اتحاد و همدلی در توس توز ای مسلمان را قرآن فاهدین از آن توست بی ربی خالق مظهر ایمان توست زندگی جا در سایه قرآن و بعد بی ربی از پایان توست تو به پاخیز از برای فکر دین مصطفی چون نشستن ای مسلمان سر به سر نقصان توست گر که خواهی ظلم کی شود محبه جهان این بشارت را ببین در صفحه قرآن توست مسلمان راه قرآن راحیدن آسمان توست خیر از امر خالق مذهب ایمان توست زندگی جا بدن در سایه قرآن ببا خیر از امر شیطان بی گمان پایان توست ای مسلمانو به دنیا از دلت بیرون بکن عزت تو در رضای خالق یزدان تو گر ندانی امتحان کن ای مسلمان اتحاد تا ببینی این جهان را در کف فرمان ای مسلمان راه قرآن راه دین آن توست بی از امر خالق مذهل ایمان توست زندگی جاودان در سایه قرآن دولت بین بی از امر شیطان بی گمان پایان توست ای مسلمان راه قرآن راه دین از آن توست بی روی از امر خالق مزهر ایمان توست زندگی جا در نسای قرآن گفت بی از امر شیطان بی گمان من پایان توست بی از امر شیطان بی گمان پایان